سوره مبارکه عبس را میخوانیم که در سوره مبارکه عبس هم همون تخویف اخراوی است اما اینجا علا سبیل ترقی اینجا خداوند از و جل احوال زاری، اونجا را بیان میفهمد. یوم یفرر المرء من اخیه و امهی و آبیه، چنان وحشت شدید میشه که انسان از پدر میگوریزد، از مادر میگوریزد، از فرزند میگوریزد، از زن میگوریزد، نفسی نفسی میشه. اما قبل از این تذکری هست برای رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره آن نزول این آیات معروف است. گروهی از سرداران کفار آمده بودند، خدمتی آن حضرت صلی الله علیه وسلم. امیه بود، عطب بود، شیبا، ولید. تعدادی رسول الله صلی الله علیه وسلم با آنها صحبت می کرد، و داشت ترغیب می داد، موعظه می کرد. یک صحابی نابینا که هم اسمش عبد الله ابن ام مکتوم هست، هم امر ابن ام مکتوم. این پسر عمه خدیجت الکبره رضی الله تعالی عنها بود. پسر امه حضرت خدیجه بود یک صحابی مخلص دوست داشتنی اما نابینا. او خبر نداشت او آمد نمی دونست رسول الله با سرداران با بزرگان قرش نشسته داره اونها رو تبلیغ میکنه. گفتی او رسول الله به من هم توجه بفرمایید. به من بعضی از آیات قرآن را یاد بده من میخوام حفظ کنم آن حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که ایشون آمد چون بدون وقت آمده بود آن حضرت مقدار چهرهش گرفته شد ابوس شد به اصطلاح ما ترش شد و ناراحت شد به خاطر اینکه چرا این بی‌موقع آمد الله عز چون از حقایق می‌دانست و این را هم شما می که هدف پیغمبر ما قبلا این نو آیات خاندیم هدف پیغمبر این بود که این سرداران ایمان بیاورند اونها دیگه غرور داشتن تکبر داشتن انسانی که از نظر مال و دنیا و ثروت در سطح پایین بود دیگه دوست نداشتن با او هم نشین و هم مجلس باشند. اما الله عز و جل پیغمبر خودش را تذکر داد چرا چهره ترا گرفتی؟ چرا ناراحت شدی عبس و تولا یعنی ابوسود و اعراض کرد روی گردانی کرد از این صحابی مخلص انجاہ الاما بخاطر خاطر اینکه یک نابینا آمد و ما یدری کلعله یزکا تو چی خبرداری شاید همین میخواد پاک بشه. یعنی زمینه پاکی این فراهم است این میخواد با تقوی بشه این میخواد از آلودگی پاک میشه او یاد ذکر یا میخواد که پند بگیرت از تو نصیحت بگیرد فتن فعوه الذکر به او پند و نصیحت نف میده سود میده چرا از اون روگردان شدی؟ اما من استغنا اما اون انسانی که استغناء میده خودش را بینیاز میدونی اون سردار متکبر فانتا له تصد تو او را دنبال کردی دنبال او افتادی گرچه هدف رسول الله ایمان بود حرص بر ایمان اونها بود وما علیک اللہ یزکا الله میفرماید ای من بر تو نیست اینکه پاک نشه او یعنی اگر او ایمان نیاورد هدایت نشد بر تو هیچ نیست تو چرا نگرانی اما و اما من جاکه یسعا و هو یخشى. اما اون صحابی که دوان دوان می آید پیشتو و هو یخشاؤ از خدا می ترسد فانت عنه تلها تو از او غفلت میکنی و رخ برمی کلا خبردار الله بی حقا انها تذکر این آیات آیات پند هستن موعظه هستن فمن شع ذکر هر کسی می خواهد بگیرد هر کسی که میاد بزار پند بگیره اونی که بینیاز از این پند نمیگیره اونی که نیازمند هست و حریص هست او پند میگیره و این کلام با چه نظمی با چه ترتیبی با چه شکوهی نازل شده فی صحف مکرمه این اوصاف قرآن هست در صحیفه های مکرم یعنی در برگه نوشته شده که مکرمه هستند پیش خدا قدر دارند عزت دارند مرفوعت جایگاهشون بسیار بالا متحره از هر عیب پاک بدور به ایدی سفره به دست کاتبینی سفره کاتبین را میگن یا فرشتگان مراد هست یا صحابه رسول الله که می نوشتن کرام برره و بعضی میگن هر دو گروه کرام برره اون سفره و اون نویسندگانی که کرام امبر یعنی دارای شخصیت مکرم و نیک صاف صادق یعنی این قرآن مجید را الله عز وجل از لوح محفوظ در برگ های مکرمه و در صحیفه های مکرمه که جایگاهشون بلند و بالا و پاک از هر عیب به به دست فرشتگانی که اون فرشتگان دارای اوصاف خاص هستن فرستاده اما انسان مرگ بر انسانی که منکر این همه هست قتل الانسانو ما اکفرا قتل الانسان یعنی کشته بشه این انسان ما اکفرا چی چیزی اون را چی کرد باعث کفرش شد یعنی ایو او علی علالکفر یعنی که ما اکفر استی تعجب است، چقدر این انسان کفر میکنه، چه جراتی داره به کفر کردن، این انسان فکر نمیکنه خودش چون انسان چی را کفر میکنه، هم قرآن را کفر میکنه، هم قیامت را، الله می خودش را نگاه کن، از سی پیدا شده، من ایشی ان خلقه، از چی چیزی الله او را آفرید، من نطفت خلقه، فقدره، از قطره نطفه الله ارا آفرید فقدره تمام اعضاءش را الله برابر قرار داد ثم السبيل يسر سپس راه خروجش را آسان کرد سبحان الله انسان وقتی که بزرگ میشه و تبدیل به چند کیلو میشه بچه‌هایی کی که متولد میشوند این بچهها دست سی کیلو هستن، سی کیلو، چهار کیلو، پنج کیلو. بالاخره با این حجم خارج شدن خیلی مشکل هست. لذا الله می‌فرماد راه را الله آسان آسانو فراهم کرد، ثم یا سره سپس این انسان یاد زمین زندگی میکنه سالها می‌گذرد، ثم آماته او سپس الله اورا موت میده، فاکبرها اورا دفن میکنه یعنی قبرش بهش میده. قبر براش فراهم میکنه ثم اذا شاء انشرا سپس هرگا الله بخواهد او رب بلند میکنه دوباره از قبر زنده میکنه پس این انسان این مراحل را آیا به مراحل فکر نمی کنه چرا این انسان آمادگی نداره کلا کلا بمن حقا لما يقضي ما امر حنوز این انسان انجام نداده اون چیزی که خدا بهش امر کرده دستورات خدا را اطاعت نکرده فرمان خدا را اطاعت نکرده فلینظور الانسان الى طعامه این انسان ببیند طعام خودش را ببیند انسان به بقیه نه همین غذای خودش را فکر کند این غذا چه مراحلی طی کرده چه مراحل سختی را گذرانده تا به شکل غذای غذا لذیذ جلوی چشمان تو روی سفره گذاشته اگر شما از نان مثلا بگیر بزر شده باران آمده بعدان چند ما گذاشته اون کشاورز مسکین چطور درو کرده بعدان چطور خرمنگ کوبیده شده بعدان رفته آرد شده چی چی شده تا اینکه امروز نان شده بقیه غذاها هر خوراکی فکر کن مراحل شیکی از یکی بیشتر انسان نعمت استفاده میکنه فکر نمیکنه این کارخانه کجاست که به صورت خودکار همه چیز درست میشه یک سفره شما پهن کردی سبحان الله چه قضاهای متنوع هر یکی مراحل را طی کرده الله می فرماید فینظر الانسان الى طعامه این دلیلی هم هست برای اثبات قیامت انسان ببیند بی تعام خودش را ببیند غذای خودش را ببیند انسبب ن الم ص اینکه میگیم رب هست، تدریج تربیت میکنه. اینها همه از مراحل چیاصلا تربیتی. ان صب ن الم صببا ما ابرا رختیمسباً ریختنی ثم شقنا الأرض شقا سپس ما باز کردیم زمین را. زمین را شکافتیم باز کردیم شقا شکافتنی باز کردنی فانبتنا فا فیها حبوا وعنبا وقضبا ما رویان در آن زمین حبوبات را دانهارا جوز هس گندم هست همه و عنبا و انگور را و تمام سبزیجات کدو هست بادمجان از هس گرجه هست بامیه هست بقیه سبزیجات همه اینها را و زیتونن و همچنین درخت زیتون را و نخلا و همچنین نخل خورمارا و حدائق غلبا و باغهای گنجان که انوای میوه ها هست انا سیب موز انبه. هر چی که دلت بخواد و فاکهتا و عبا و همچنین میوه ها و عبا چر، چراغا الفزار یه قسمتی این زمین الفزاری هست همیش ها هستند. اینها برای کیند؟ متعال لكم ولي اینها همه برای استفاده شما و چارپایان شما. البته چارپایان شما هم شما استفاده میکنید چون چارپا میخورد، اون سبزی را چاق میشه بعد از اون گوشت شما میخورید. متعال لكم پس ای انسان فکر کردی؟ که این مراحل را که تی میکند، سپری میکند، کند، می, می و آخر تبدیل به یک غذای لذیذ، به یک خوراک خوب، به یک طعام خوب، هم برای خودت، هم برای چارپاو، حیوانت میشه. بینها به اینها فکر کردی؟ همچنین الله مراحل مختلفی را تی می کند، آخر انسان به وجود میاد. ان... انسان که به وجود بیاد باز این زمین در این زمین زندگی میکند بعد مراحل دیگری طی میشه دوباره انسان زنده میشه وقتی که دوباره انسان زنده میشه اونجا چه خبر است فاذا فا جاءت الصاخه وقتی که ساخه بیاد ساخه یعنی اون جیغ اون فریاد اون فریادی که اسرافیل سر میدهد یوم يفر المرء من اخیه و امه و اون روزی مدعی سوره موضوع مرکزی سوره همین است اون روزی که فرار میکند می گریزت انسان از برادرش و امه از مادرش و ابيه از پدر و صاحبته از همسر، و بنیه از فرزند محبوب ترین انسان هایی که روی زمین هست همین هستند انسان پدر را دوست داره مادر را فرزند را همسر را اینها هستند از محبوب ترین ها اونجا میگوریزی پس فکرش را بکن چقدر وحشت زیاده لذا الله می فرماید لكل منهم يوم اذن شأن یغنی برای هر انسانی در از این انسان ها در اون روز مشغولیتی هست کاری هست که یغنی او را به خود مشغول کرده وجوه یوم اذم اللهم اجعلنا منهم وجوه یوم اذم مصفره چهره های هست در اون روز مصفره یعنی روشن منیسی بدلیل نور ایمان ایمان داری انجا یوم تبیز و وجوهن چهره روشنه ضاحکت مستبشرة این چهره ها خندان هست و مستبش رشادان هست یعنی خوشخبری و مجد حاصل کرده میدونه که به بهش داره میره و وجوه یوم علیها غبره و چهره های دیگر هست در اون روز بر آن چهرهها غبار هست بر اون چهرهها سیاهی هست این کدوم چهره هست ترحق قطره اون را پوشش میده ذلت پوشش میده زلیل خار سیاه خجل سرفکنده و شرمنده هست این کیه؟ اولائک هم کفرت الفجر اینها کیا هستند اینهایی که هم فساد عقیده داشتن و فساد عمل کفره کافر بودند فجرا فاجر بودند فاسد بودند در دنیا با کفر و انکار سپری کردند یا قبول داشتند اما با فساد سپری کردند همیش خدا را ناراضی کردند لذا انها, جا انها چهرشون غبار آلود هست و اون روز بسیار نگران و پریشان هستند صدق الله مولانا العظیم